تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدیر پر برکت و بزرگوار است کسی که فرمان روایی جهان هستی به دست اوست و او بر هر چیز توانا الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزیز الغفور همان کسی که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یکی از شما نیکوکار در است و او پیروزمند بخشنده است الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من خطوظ ام كيفت را بر فراز یکدیگر آفرید در آفرینش الله الرحمن هیچ بینظمی و خللی نمیبینی بار دیگر نگاه کن آیا نقصی میبینی؟ كرتين ينقلب إليك و هو بار دیگر به عالم هستی نگاه کن نقصی نخواهی دید و چشم تو در حالی که خسته و ناتوانه است به سوی تو باز میگرده و لقد زیننا سماء الدنیا بمصابیح و جعلناها رجوماً للشیاطین و لهم عذاب السعیر به راستی ما آسمان دنیا را با چراغها آراستیم و آنها را برای راندن شیاطین قرار دادیم و برای آنان عذاب آتش سوزان آماده ساختیم و لِلَّذِينَ بربهم عذاب جهنم و وَبِئْسَ و برای کسانی که به پرورگارشان کافر شدند عذاب جهنم است و چه بد جایگاهی اذا القوا فيها سمعوا لها تفور هنگامی که در آن انداخته شوند از آن نعره‌ای وحشتناک می‌شنوند در حالی که آن می جوشد تکاد تميز من الغیغ كلم فوج خزنتها الم از شدت خشم نزدیک است جهنم پاره پاره شود هرگاه که گروهی در آن انداخته میشوند نگهبانانش از آنان میپرسند آیا بیم دهنده ای به سراغتان نیامد؟ قالوا <تصفيق> بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا فی ضلال كبير میگویند بله بین دهنده به سوی ما آمد آنگاه ما او را تکذیب کردیم و گفتیم هرگز الله چیزی نازل نکرده است شما جز در گمراهی بزرگ نیستید وقالوا نسمع او نعقل ما في أصحاب السعير. و باز میگویند اگر ما میشنیدیم یا تعقل میکردیم در زمره دوزخیان نبودیم فاعترفو بهم لأصحاب پس آنها به گناه خود اعتراف کنند پس دوری از رحمت خدا بهره دوزخیان با ان ربهم لهم مغفرة بیگمان کسانی که در نهان از پروردگارشان میترسند آنان آمرزش و پاداش بزرگی دارند و اسر قولكم او جهرو به انه عليم بذات الصدور گفتار خود را پنهان دارید یا آن را آشکار سازید به هر حال او به آن چه در دل هاست آگاه است الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ايا همه موجودات را آفریده است از حال آنها نمیداند در حالی که او باریک بین و آگاه است هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه و او کسی است که زمین را برای شما رام گردانید. پس در گوشه و نواهی آن راه بروید و از روزی او بخورید و بازگشت همه به سوی اوست. اأمنتم من فی السماء ن یخصف بكم الر فا هی تمورآیا خود را از کسی که در آسمان است در امان میدانید که فرمان دهد زمین شما را فرو برد پس آن ناگهان به لرزش دراید من في كيف نذیر یا خود را از که در آسمان است در امان میدانید دانید که تند بادی همراه با ساندیز بر شما فرستد پس به زودی خواهید دانست که هشدار من چگونه است وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ الذین من قبلهم فکیف کان و به راستی کسانی که پیش از آنان بودند نیز دعوت پیام بر آن را تکذیب کردند پس عقوبت من چگونه بود؟ اولم یرون الى الطیر فوقهم خوافت ما یمسکهن الا الرحمن نه بکلی شیع بصیر آیا به پرندگانی که بر فراز سرشان است که گاهی بالهای خود را می گشایند و گاهی فرو می بندند، نگاه نکردند؟ جز خدای رحمان کسی آنها را بر فراز آسمان نگاه نمیدارد. بیگمان او به هر چیز بیناست امن ام هذا الذي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ اِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُونَ آیا این چه کسی است آنکه لشکر شماست که به جای خدای رحمان شما را یاری میکند کافران جز در فریب و غرورشان نیستند ام من هذا الذي يرزقكم این ام فكر بل لجو فی عتو و نفور؟ آیا آن کیست که به شما روزی دهد اگر او روزیش را باز دارد بلکه آنها در سرکشی و دوری از حق لجاجت می کنند افمن یمشی مكبا على وجهه اهداء من یمشی سویا على صراط مستقیم آیا کسی که به رو افتاد حرکت می کند به هدایت نزدیکتر است یا آن کسی که راست و استوار بر راه راست گام برمیدارد دارد؟ قل هو و أشاءكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما بگو او کسیست که شما را آفرید و برای شما گوش و چشمان و دل قرار داد اما شما اندکی سپاسگزاری گذاری می کنید. قل هو الذی ذوأکم فی الارض و تفشرون بگو او کسیست که شما را در زمین پراکند و به سوی او گرد آورده می شوید. و یقولون متى هذالوعد این کنتم صادقین و می اگر راست میگوید، این بعد قیامت چه زمانیست؟ قل اینما العلم عند الله و اینما ان ای پیام بر بگو، علم قیامت تنها نزد خداست و من فقط خوشتار دهنده آشکار هستم. فلما رأوه زلفتا سی اتوجوه الذین کفر وقیل الذي الَّذِي بهی تدعون. پس چون آن وعده و عذاب الهی را از نزدیک ببینند چهره کسانی که کافر شدند سیاه و اندوهگین می و به آنها گفته می شود، این همان چیزیست که شما آن را میطلبیدید. قل اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعْيَ اَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِیرُ الْكَافِرِينَ فَمَنْ يُجِیرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عذاب ای پیام بگو به من خبر دهید اگر خداوند مرا و کسانی که با من هستند حلا کند یا بر ما رحمت آورد پس چه کسی کافران را از عذاب درناک پناه می دهد قل هو الرحمن آمنا به و علیه توکلنا تعلمون من هو فی ضلال مبین بگو او خدای رحمان است به او ایمان آوردیم و بر او توکل کرده ایم. پس ای کافران بزودی خواهید دانست چه در گمراهی آشکار است قل رایتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء ین ای پیامبر بگو به من خبر دهید اگر آب شور شما در زمین رود رو پس چه کسی میتواند برای شما آب روان بیاورد بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مربان نون والقلم قل وما نون سوگند به قلم و آنچه می نویسند. ما انت به نعمت که بمجنون که تو ای پیامبر به نعمت و فضل پروردگارت دیوانه نیستی و این لکل اجرا غیر منون من و بیگمان برای تو ای پیام بر پاداشی بی پایان و عظیم است و اینک لعلا خلق عظیم و یقینا تو ای محمد بر اخلاق و خوی بسیار عظیم و والایی هستی فتت و يبصرون. پس تو به زودی خواهی دید و آنها نیز خواهند دید که کدام یک از شما دیوانه است این ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و وهو اعلم بالمهتدین. همانا پروردگارت بهتر میداند چه کسی از راه او گمراه گشته است و نیز او به هدایت یافتگان داناتر است وَلَا تُطَعِ الْمُكَذِّبِينَ پس از تقذیب کنندگان اطاعت مکن دو لو تدهن فَيُدهِنُونَ آنها دوست دارند و میخواهند که نرمی و مدارا کنی پس آنها نیز نرمی و مدارا کنند وَلَا تُطِعْ کُلَّ حَلَّافٍ مَهِيمٍ و از هر فرومایه ای که بسیار سوگند دروغ یاد می کند اطاعت مکان همماز مشایم بنمین. آن بسیار عیب جویی که به سخنچینی آمد و رفت می کند. من ما علی معتد افیم. بسیار بازدارنده یک کار خیر و متجاوز و گناهکار است. عطلین بعد ذالک زنیم خشن و کین توز و بدتر از آن بی نسب و حرام زاده است. انکان ذا مالی و بنیم بدان خاطر که صاحب مال و فرزندان بسیار است مبادا از او اطاعت کنی ازا تتلا عليه قال هنگامی که آیات ما بر او خوانده شود گوید اینها افسانه‌های های گذشتگان است سنتمهو بر الخرقوم به زودی بربینی او داغ گذاریم اینا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنة از اقتمو ليصرمون نها ما آنها را آزمایش کردیم همان گونه که صاحبان باغ را آزمودیم هنگامی که سوگند یاد کردند که صبحگاهان گاهان میبه های باغ را بچینند و لا و انشاء الله نگفتند فطاف عليها طائف من ربک و هم نائمون پس عذابی فراگیر از سوی پروردگارد بر باغ آنها فرو آمد در حالی که همه در خواب بودند. پس آن باغ سبز و خرم همچون شب سیاه شد. فتنادو مصبحین آنگاه صبحگاهان یک دیگر را ندا دادند. ان یغدو علی حرصکم ان که اگر میخواهید کنید به سوی کش زار و باغ خیش بروید و وهم پس آنها به سوی کش زار حرکت کردند در حالی که آهسته با هم میگفتند اللا يدخلنها اليوم عليكم مسكين مراقب باشید که امروز هیچ بینوا و مسکینی در آن باغ وارد نشود وقادوا على حض قادرين و صبحگاهان با تصمیم جدی برمان و جلوگیری از مندان بیرون شدند فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا اِنَّا پس هنگامی که آن باغ را دیدند گفتند یقینا ما راه گم کرده این بل نحن محرومون نه بلکه ما بی بهره و محروم هستیم قالوا ان وسطهم الم اقول لكم لولا تسبحون یکی از بهترین آنها گفت آیا به شما نگفتم چرا شکر و تسبیح خدا را نمیگویید؟ قالوا سبحنا ربنا انا كنا ظالمين گفتند پروردگار ما پاک و منزه هست مسلما ما همکار بودیم فاقبل بعضهم على بعض آنگاه انگاه کنان به یکدیگر رو آوردند والو یا ویلنا ان کن گفتند وای بر ما که تقیانگر و سرکش بودیم عطا ربنا این یبدلنا خیرا منها اینا الی ربنا را امیدواریم که پروردگار من ما را ببخشد و در عوض چیزی بهتر از آن باغ به ما بدهد بیگمان ما به سوی پروردگار خود روی آبرده این. کذالک العذاب و لعذاب الاخره اکبر لو كانوا یعلمون عذاب خدا در دنیا این چنین است و عذاب آخرت مسلما بزرگتر و بیشتر است اگر آنها میدانستند. ان للْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ به راستی برای پرهیزگاران نزد پروردگارشان باغهای پرنعمت است أَسَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ آیا ما مسلمانان را همچون مجرمان و گناهکاران قرار میدهیم. ما لكم کیف تحكمون شما را چه شده است؟ چگونه داوری می کنید؟ ام لکم کتاب فیه تدرسون آیا شما کتابی آسمانی دارید که در آن می خانید؟ این لکم فیه لما تخیرون در آن کتاب آنچه را انتخاب کنید برای شما نوشته شده است لکم ایمان علینا بالغه الی یوم القیامه ان لکم لما تحکمون یا اینکه شما بر عهده ما اهد به پیمان استواری تا روز قیامت دارید هر هرچه را حکم کنید حق برای شما باشد سلهم ایوهم بذلك دعیم ای پیامبر از آنها به پرس کدام یک از آنان در برابر این ادعاها متعهده است ام لهم شرکاء فلیعتو بشركائهم إن كانوا صادقين و یا اینکه آنها معبودان و شریکانی دارند، پس اگر راست میگویند، باید شریکان و معبودان خیش را بیاورند برند. یوم یکشف عن و یدعون السجود فلا روزی که کار بالا گیرد و خداوند متعال برای داوری میان خلائق بیاید، ساق برهنه و مکشوف گردد و دعوت به سجود میشوند ولی نمیتوانند سجده کنند. قاشعه اذقارهم ترهقهم ذله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون در حالی که دیدگانشان از ندامت و خجالت فرو افتاده وذلت و خاری بودودشان را در برگرفته است و یقینا که پیش از آن در دنیا در حالی که سالم بودند به سجود فرا میشدند می شدند. و می به این لا یعلمون. پس ای پیامبر مرا با آن کسی این سخن را تکزیب می کند ما آنان را از آنجایی که نمیدانند به تدریج خواهیم گرفت و املی لهم این کیدی و به آنها مهلت میدهم. دهم بیگمان مکر و تدبیر من استوار و محکم است ام تسألهم اجرا فهم من ای پیامبر، آیا تو از آنها مزدی درخواست میکنی کنی که آنها از ادای آن در رنجند و برایشان سنگین است؟ امعندهم الغیب فهم یکتبون یا اسرار غیب نزد آنهاست، پس آنان از آن می نویسند. ت باللی حت میرب کولاکن ك واحبشتی از دا و هو نط پس ای پیام برای فرمان و حکم پرورد صبر کن و مانند صاحب ماهی مباش هنگامی که سرشار از قم و اندوه بود خدا را ندا کرد لولا نعمت من لنبذ وهو اگر نعمت و رحمتی از سوی پروردگارش او را در نمی یافت یقینا از شکم ماهی به صحرای بی آب و علف بیرون افکنده میشد در حالی که او بدحال و نکوهیده بود فجتباه ربه فجعله من الصالحين پس پروردگارش او را برگزید و او را از قرار داد وإن يكادوا الذين كفروا ليذلقونك بأبطارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون ای پیامبر نزدیک است کسانی که کافر شدند هنگامی که آیات قرآن را میشنوند، با چشمهای خود تو را چشم زخ بزنند و بلغزانند و میگویند گویند قطعا او دیوانه است و ما هو الا ذکر للعالمین در حالی که این قرآن پندی برای جهانیان نیست بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان روز واقع شدنی رستاخیز ملحق آن واقع شدنی چیست؟ ومادك ملحق و تو چدانی آن واقع شدنی چیست و چگونه است؟ كذبت سمود و عاد بالقارعه قوم سمود و قوم عاد قیامت در هم کووبنده را تگذب کردند؟ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُو پس اما قوم سمود به بانگ سهمگین حلاک شدند وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُو بِرِیحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَهِ و اما قوم عاد با توند بادی سرکش و سرد به حلاکت رسیدند تخرم عليهم سبع ليال و ثمان ايام حصوما فترى القوم فيها طرعا كانهم اعجاد نخل خاويه خداوند هفت شب و هشت روز پی در پی بر آنها مسلط نمود آنگاه آن قوم را آن توند باد مانند تنهای پوسیده تو خالی درختان خرما بر زمین افتاد و هلاک شده دیدی. فهل ترا لهم من دیدی. پس آیا از آنها کسی را میبینی بینی که باقی مانده باشد؟ وجاء جاء فرعون و من قبله والمعتفكات المعتفکات بالخاطئه و فرعون و کسانی که پیش از او بودند و مردم شرح های ویران شده قاملوت مرتکب گناهان بزرگ شدند فعطا رسول ربهم فأخذهم اخذت الرابیه پس آنها از فرمان فرستادی پروردگارشان گارشان سرپیچی کردند آنگاه خداوند آنها را به عذاب سختی گرفتارشان کرد في همانا هنگامی که آب تغیان کرد شما را در کشتی سوار کردیم لِنَجَعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا اُذُنُ واعية. تا که پندی برای شما قرار دهین و گوشهای شنوا آن را بشنوند و به یاد بسپارند فَإِذَا فا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ از هنگامی که یک بار در سور دمیده شود و حملت و والجبال فدکتا دکتا واحده و زمین و ها از جا کند شوند پس یک بار هم کوبیده و متلاشی شوند و یوم ایذ وقعت الواقعه پس در آن روز واقعی عظیم قیامت به وقوع می پیوندد. و شققت السماه فهی يوم اليواهيه. و آسمان شکافته می شود، پس در آن روز سست می گردد و فرو می ریزد. والملك على ارجائها. و يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه و فرشتگان بر کناره آن قرار می گیرند و آن روز هشت فرشته عرش پروردگارت را بر فرازشان حمل می کنند يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافیه در آن روز شما همگی برای حساب رسی به پیشگاه خداوند عرضه میشوید و هیچ چیز از کارهای شما پنهان نخواهد ماند فَأَمَّا من اوتی كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا او مقراء پس اما کسی که نامی اعمالش را به دست راستش دهند گوید بیایید نامه‌ی اعمال مرا بخوانید اننی تو انی ملاقات حسابیه من یقین داشتم که به حساب اعمال خودم خواهم رسید فهو فی عیشت الراضیه پس او در یک زندگی پسندیده و رضایت بخشی خواهد بود جنت در بهشتی برین وقهدن که میوههایش برای چره شدن در دسترس است کلواش را بی ما اسلفتم فی من الخالیه و به آنها گفته می شود بخورید و بیاشامید تن باد به خاطر آنچه در ایام گذشته پیش فرستادید و اما من اوتی کتابه بشماله فیقول یا لیت لم اوت کتابیه و اما کسی که نامه اعمالش را به دست چپش دهند گوید ای کاش هرگز نامه اعمال من به من داده نمی شد ولم ادری ما حسابیه و نمیدانستم حسابم چیست یا لیت ای کاش با مرگ همه چیز تمام می شد و پایان کار بود ما مالیه مال و داراییم مرا بی نیاز نکرد و سودی نبخشید. هلک عنی قدرت و فرمان رواییم نیز از دست من رفت و به کلی نابود شد. فغلوه به فرشتگان گفته می شود. او را بگیرید پس طوق به گردن او اندازید. ثم الجحيم سپس او را به آتش دوزخ بیفکنید ثم في سلسله درعها فاسلكوه آنگاه او را در زنجیری که طول آن هفتاد ذرا است ببندید اننه كان لا يؤمن بالله العظيم او هرگز به خداوند بزرگ ایمان نمی آورد و لا يحب على طعام المسكين و هرگز مردم را بر اطعام بی نوایان تشویق نمی کرد فلیف له اليوم ها هنا حمیم. پس امروز در اینجا دوست سمیمی و مهربانی ندارد که کمکش کند ولا طعام الا من غسلین و قضایی جز از شرک و خون ندارد لا یأکله الا غذایی که گناهکاران آن را نخورند فلا اقسم بما تبصرون پس سوجند به آنچه میبینید وما لا تبصرون و به آنچه نمیبینید اینهو لقول رسول کریم بی تردید این قرآن گفتار رسول بزرگوار است و ما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون و اینها گفتار یک شاعر نیست اما شما اندکی ایمان میآورید ولا و لا بقول کاهن قلیلا ما و نیز گفتار یک کاه نیست، دیکن شما کمتر پنج میگیرید. تزیل تنزیل من رب این قرآن از سوی پروردگار جهانیان نازل شده است و لو تقول علينا بعض الاخاوین و اگر پیام بر سخنانی به دروغ برما می بست، لآخذنا منه باليمين مسلما ما دست راست او را میگرفتیم ثم لقطرنا منه الوتين سپس شاهرگ قلبش را قطع میکردیم انا منكم من احد عنه حاجزين پس هیچ کس از شما نمی توانست از عذاب او مانع شود و, و یقینا این قرآن پند و تذکری برای پرهیزگاران است و انا لنعلم ان منکم مکذبین و ما محققا میدانیم که برخی از شما تکذیب کنندگان این کلام الهی هستید و انه علی و همانا این قرآن بر کافران مایه حسرت و ندامت است و, و بیگمان این قرآن حق الیقین است فسبح بسم ربك پس ای پیامبر به نام پروردگار بزرگت تسبیح گوی بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان سأل سائل واقع تقاضا کننده ای تغازای عذابی وقوع یافتنی کرد لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دافع. این عذاب برای کافران است هیچ دفت کننده ای ندارد من الله از سوی الله صاحب مراتب و درجات است تعرج الملائكه والروح اليه في يوم كان مقداره 50 الف سنه فرشتگان و روح به سوی او عروج میکنند در روزی که مقدارش 50 هزار سال است با صبررا جمیلا پس تو ای پیامبر صبر جمیل پیش کن انهم یرونه بعیدا بیگمان آنها آن روز را دور میبینند ونراه قریبا و ما آن را نزدیک میبینیم یوم تكون السماء كالمهن همان روزی که آسمان چون مثل گداخته شود وتكون الجبال كالعم و كوهها مانند پشم رنگین متلاشی و پراکنده شود ولا یسأل حمیم حمیما و هیچ دوست سمیمی و خویشاوندی از حال دوست سمیمی و خویشاوند خود نپرسد یادل مجری مولو او افتزیم این معذاب بیا در حالی که آنان به یکدیگر نشان داده میشوند گناهکار دوست دارد و آرزو کند خویشتن را از عذاب آن روز باز به فرزندانش و فاحیبتدی واخیم. و زنش و برادرش و, و قبیل اش که همیشه او را جای و پناه میداد و من فی الارض جمیعا ثم ینجیه و همه آنهایی که روی زمینند همگی فدا کند سپس او نجات یابد کلاات اما هرگز چونی نیست بیگمان آن شعله های آتش سوزان است پوست از سر و صورت برمیکند کند تدعو من ادبر کسانی را که به فرمان الله پشت کردند و از حق روی گرداندند فرا میخواند وجمع فاوعى کسانی را که اموال را جمع آوری و ذخیره کردند و حق آن را نپرداختند ان الانسان خلقها لوعا یقینا انسان کم تاقت و حریص آفریده شده است اذا مسه الشر جزوعا هنگامی که بدی و مصیبتی به او رسد بیتابی می کند مسه اذا الخیر و هنگامی که خوبی به او رسد بازدارنده و بخیل می شود مگر نماز گذاران هم على صلاتهم دائمون همان کسانی که بر هایشان همیشه مداومت می کنند. والذین فی و کسانی که در اموالشان حق معین و معلومی است. والمحروم برای گدا و محروم و الذین يصدقون بیوم الدین و کسانی که روز جزا را تصدیق می کنند هم من عذاب ربهم مشفقون و کسانی که از عذاب پروردگارشان میترسند ان عذاب ربهم غیر مأمون بیگمان از عذاب پروردگارشان در امان نتواند بود والذین هم لفروجهم و کسانی که شرمگاه‌هایشان را نگه میدارند الا علی ازواجهم او ما ملکت ايمانهم مگر با همسران و کنیزانی که مالک آنها هستند که در این صورت ملامت و سرزنشی بر آنها نیست. بتغا وراء هم پس هر کس غیر از اینها را بخواهد آنان متجاوزان هستند وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ و كِ امانتها و عهدشان را رعایت می کنند هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ و کسانی که به های خود متعهد هستند والذين هم على صلاتهم يحافظون وکسانی که بر نمازشان محافظت میکنند اولئک فی جنات مکرمون اینان در باغهای بهشت گرامی داشته میشوند فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا پس ای پیامبر کافران را چه شده که به سوی تو میشتابند عن اليمين وعن الشمال عزين از راست و چپ گروه گروه و پراکنده میشوند اي طمع منهم اي <muchess> آیا هر کدام از آنها با آن اعمال ناپسندش تمع دارد که او در بهشت پر نعمت الهی در آورده شود گلا این قال قونون هرگز چنین نیست بیگمان ما آنها را از آنچه خودشان می‌دانند آفریدیم. فلا اقسم برب المشارق والمغارب اننا لقادرون پس به پروردگار مشرق‌ها و مغرب‌ها سوگند میخورم که ما یقینا قادریم. علی ان نبدل خیران منهم و نحن بمسبوقین بر آنکه کسانی دیگر بهتر از آنها را جایگزین کنیم و ما برای این کار آجز و ناتوان نیستیم فذرهم یخوبو و یلعبو حتی یلاقو یومهمو لذی یوعدون پس ای پیامبر آنان را به حال خود واگذار تا در باطل خود فرو روند و بازی کنند تا به روزی که به آنها وعده داده شده است برسند یوم یخرجون من الاجداث تراعا کاننهم الی نطقبن همان روزی که شتابان از قبرها خارج خارج میشوند گویی به سوی نشانه و بطها می دوند ابصارهم ترهقهم ذله ذالک اليوم الذی كانو یوعدون در حالی که چشمهایشان از شرم و وحشت به زیر افتاده و ذلت و خاری آنها را پوشانده است این همان روزی است که به آنها وعده داده می شد. بسم اللَّهِ الرحمن الرَّحِيمِ به نام خداوند بخشنده مهربان إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يأتيهم عَذَابٌ أَلِيمٌ بیگمان ما نوح را به سوی قومش فرستادیم و گفتیم قوم خود را پیش از آنکه عذاب دردناک به سراغشان آید هشدار ده. قال يا قوم انني لكم نذير مبين نوح گفت ای قوم همانا من برای شما بیم دهنده آشکاری هستم الله واتقوه که الله را پرستش کنید و از او بترسید و مرا اطاعت کنید یاغفِر من ذنوبكم و ویؤخِّرکُم الی أجل مسمَا این اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو کنتم تعلمون پس اگر چونین کردید الله گناهان شما را میامر و شما را تا زمان معینی مهلت میدهد زیرا هنگامی که اجل الهی فرا رسد تأخیر نخواهد داشت اگر میدانید قال رب إنی دعوت قومی لیلا ونهارا و نوح گفت پروردگارا به راستی که من قام خود را شب و روز به ایمان دعوت کردم فلم یجدهم دعایی إلا فرار اما دعوت من در حق آنان چیزی جز گریز نیابزود و اینی كلما دعوتهم لتوفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم جعلوا اصابعهم في و من هرگاه آنها را دعوت کردم تا تو آنان را بیامرزی انگشتانشان را در گوش هایشان فرو کردند و لباسهایشان هایشان را به خود پیچیدند و در مخالفت اصرار و پافشاری کردند و به شدت گردن کشی و تکبر نمودند ثم جهارا. سپس من آنها را با صدای بلند و آشکار دعوت کردم ثم انی اعلنت لهم و لهم آنگاه به آشکار برایشان گفتم و در نهان برای هر کدام از آنان بیان کردم فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا پس به آنها گفتم از پروردگار خویش آمرزش بخواهید بیگمان او بسیار آمرزنده است رسل السماء علیکم مدرارا تا از آسمان باران پیدرپی پی بر شما بفرستد باموال و بنینا و یجعل بنین جنات و یجعل و شما را با اموال و فرزندان بسیار مدد کند به شما باغ‌های سرسبز بدهد و برای شما نرهای جاری قرار دهد مالكم لا ترجون لله وقارا شما را چه شده است که برای الله عظمت و شکر قائل نیستید؟ وقد خلقكم اطوارا در حالی که شما را در مراحل گوناگون آفرید. الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طبقا آیا نمی بینید چگونه الله هفت آسمان را بر فراز یک دیگر آفرید؟ و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا و ماه را در میان آسمان ها مایه روشنایی قرار داد و خورشید را چراغ فروزانی گردانید والله الله من الارض نباتا و الله شما را همچون گیاه و نباتی از زمین رویانید ثم فیها و یخرجکم اخراجا سپس شما را به آن زمین باز میگرداند و بار دیگر شما را بیرون می‌آورد والله جعل لكم الارض بساطا. و الله زمین را برای شما گسترده ساخت منها سبلا تا از راه‌های پهناور آن به سوی مقصد خود رفت و آمد کنید. قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا ختارا نوح گفت پروردگارا بی گمان آنها مرا نافرمانی کردند و از کسی پیروی کردند که مال و فرزندش چیزی جز کاری بر او افزوده است و مکرو و آن پیشوایان گمراه نیرنگ و مکر بزرگی به کار بردند وقالوا لا تذروا آلهتكم ولا تذروا ود و لا سواع و لا يغوث و يعوق و معبودان خود را رها نکنید و به خصوص ود و سوا و یغوث و یعوق و نصر را رها نکنید وقد أضلوا كثیرا ولا تجد الظالمین الا ضلالا و بهراستی آنها بسیاری را گمراه كردند و تو ای پروردگار ستمکاران را جز گمراهی میفزا مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم فلم یجدون هم من دون الله انصارا سرانجام به کیفر گناهانشان همگی غرق شدند پس در آتش دوزخ در آورده شدند و در برابر عذاب الهی یا بر و مددکاری برای خود نیافتند وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرین دیارا و نوح گفت پروردگارا هیچ یک از کافران و دیارشان را بر روی زمین باقی نگذار اینکه این تذرهم یضلو ولا الا فاجرا كفارا چرا که اگر آنها را باقی گذاری بندگانت را گمراه می‌کنند؟ و جز نسلی بدکار و کافر به وجود نمی آورند. رب اغفر لي ولی والدي لی ولی والدی و من دخل بیتی مؤمنا ولی والمؤمنات و لا الظالمین الا تبارا. پروردگارا مرا و پدر و مادرم را و هر آن کس که با ایمان وارد خانه من شود، و تمام مردان مؤمن و زنان مؤمن را بیامرز و ستمکاران را جز حلاکت و نابودی میفزا بسم الله الرحمن الرحیم قل اوحی إِلَيَّ أَنَّهُ استمع نفر من الجن فقالوا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ای پیام بگو به من وحی شده است که همانا گروهی از جنیان به این قرآن گوش فرا اند پس گفتند بیگمان ما قرآن عجیبی شنیدیم ب مش فَآم الن ب وَلن نشرركَ ببنا أحد که <تسجن> به راه راست هدایت میکند پس ما به آن ایمان آوردیم و هرگز کسی را با پرورد گارمان شریک قرار نمیدهیم وَ تعا ج رّنا مستخذ خواحب وَلا وَد و اینکه که شأن و عظمت پروردگارمان بس عظیم و بلند است او هرگز برای خود همسر و فرزندی انتخاب نکرده است و انه کان یقول سفیهنا علی الله شططا و, و نادان ما شیطان در الله سخنان ناروایی میگفت و آن ذنن نه، تقول الإنس و الجن ما چون این گمان می کردیم که هرگز انس و جن بر الله دروغ نمی بندند. و انهو كان رجال من الانس نی و این که مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند. پس آنها به گمراهی و سرکشیشان افزودند. ابزودند و انهموان که موانن الی الله أحدد و آنها گمان کردند همان گونه که شما جنیان گمان میکردید. الله هیچ کس را دوباره زنده نمیگرداند و اننا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا به این که ما آسمان را جستجو کردیم پس آن را پر از محافظان نیرومند و تیرهای شهاب یافتیم و انا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن یستمع الان یجد له شهابا رفده و ما پیش از این در جاهایی از آسمان به استراق سمع مینشستیم پس اکنون هر کس بخواهد استراق سمع کند شهابی را در کمین خود خواهد یافت وَأَنَّ لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيد بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا فَإِنْ ما نمیدانیم آیا برای اهل زمین شر اراد شده یا پروردگارشان خیر و هدایت آنها را خواسته است وَأَنَّ مِنَ الصَّالِحُونَ وَمِنَ الْدُّونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ تِدَادَ و اینکه در میان ما افرادی صالح و افرادی نادرستند ما گروه های متفاوت و گوناگون هستیم و انا ظننا، ان لن نعجز الله فی الارض و نعجزه هربا به ما یقین داریم که هرگز نمیتوانیم در روی زمین الله را آجز و ناتوان کنیم و هرگز با گریز نمی توانیم او را ناتوان سازیم و راه فراری نداریم وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا به این که ما هنگامی که سخن هدایت را شنیدیم به آن ایمان آوردیم پس هر کس که به پروردگارش ایمان آورد نه از نقصان می ترسد. و نآستم دارد. و آن من المسلمون و من فمن اسلم فَأُولَئِكَ تَحَرَّو رَشَدًا. با اینکه گروهی از ما مسلمان و گروهی کافر و زال مستند. پس هرکس کس که اسلام آورده آنانند که راه رستگاری را جستجو کرده و برگزیده اند. و اما کافران و ستمکاران هیزم آتش جهنم خواهند بود. و ال استقام عَلَى عاقباریقااط اسقاین هم غد و اگر آنها بر راه راست استقامت و پایداری کنند البته با آب فراوان سیرا میکنیم و من یعرض عن ذکر ربه یسلکه عذابا فعداد. تا آنها را با آن نعمتها بیازما این و هر کس از یاد و ذکر پروردگارش روی برتابت الله او را به عذابی سخت گرفتار میسازد سازد و المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا به اینکه مساجد از آن الله است پس کسی را با الله نخوانید و انه لمما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. به اینکه هنگامی که بندی الله قیام کرد تا او را بخواند و عبادت کند نزدیک بود که از ازدهام بر گرد او بر سر هم فرو ریزند نما ادعو ربي ولا اشرك به احدا ای پیامبر به آنها بگو من تنها پروردگارم را میخوانم و کسی را شریک او نمی قل اینی لا املک لكم برا ولا رشدا بیگمان من نمیتوانم به شما زیانی برسانم و نه خیر و سودی برسانم. قل لن یجیرنی من الله احد و لن اجد من دونه ملتحدا. ای پیامبر بگو، هیچ کس مرا از کیفر الله پناه نخواهد داد و غیر از او هرگز پشت و پناهی نخواهم یافت. إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ فَإِنَّ لَهُ نَارًا جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا اگر تنها وظیفه من رساندن پیامی از جانب الله و انجام رسالتهایش است و هر کس نافرمانی الله و پیام برش کند پس بیگمان آتش جهنم از آن اوست جاودانه در آن خواهد ماند حتی اذا رأو ما یوعدون من اضعف و اقل کار کفار همچنین ادامه دارد تا زمانی که آنچه را به آنها داده شده ببینند آنگاه خواهند دانست چه کسی یاورش ناتوانتر و جمعیتش کمتر است قل این ادریع قریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا ای پیامبر بگو نمیدانم آیا آنچه که به شما وعد داده شده نزدیک است یا اینکه پروردگارم زمانی دور برای آن قرار می دهد. عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احد. الله دانای غیب است و هیچ کس را بر اسرار غیب خود آگاه نمی سازد. إلا مننیتبا میاصول خ هو تسلوک من دانی من دانی و من خالفینی راخواده مگر رسولانی که آنان را پسندیده و برگزیده است پس بیگمان از پیش روی او و پشت سرش نگهبانی و مراقبی از فرشتگان میگمارد. لیعلم ان قد ابلغو رسالات ربهم و احاق بما لدیهم و احفا کل عددا تا بداند که رسالت های پروردگارشان را ابلاغ کرده اند و الله به آنچه نزد آنهاست احاطه دارد و عدد هر چیز را شمارش کرده است بسم الله الرحمن الرحیم یا ایوها المزمین ایجامه برخود پیشیده قمیل شب را شبرا جز اندکی به پاخیز و عبادت کن مِصْلَهُ او انقص منه قليلا نیمه ای از آن را یا اندکی از آن کم کن او زد عليه و رتل القران یا اندکی بر نصف آن بیاوزا و قرآن را با ترتیل و تأمل بخوان ان سَنُلْقِي عليك قولا سَقِيلًا یقینا ما به سخنی سنگین بر تو نازل خواهیم کرد اِنَّا ناشئة اللَّيْلِ اشد اَشَدُ وَطَعًا و وطع مُقِيلًا بیگمان شب داری بر نفس دشوار است و برای گفتار و نیایش مناسب و استوار تر است ان لك فی النهار سبحا طویلا یقینا تو در روز مشغلهٔ بسیار داری واذكر اسم و وتبتل الیه تبتیلا و نام پروردگارت را یاد کن و تنها به او دل ببند رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكیلا همان پروردگار مشرق و مغرب که معبودی به حق جز او نیست پس او را کارساز و نگاه بان خود برگزین وصبر علی ما یقولون واهجرهم هجرا جمیلا و بر آنچه مشركان میگویند شکیبا باش و به شیوه و شایسته از آنها دوری کن و ذرنی و المکذبین اولی و مهلهم قلیلا و مرا با این تکذیب کنندگان مرفه و منعم واگذار گذار و آنها را کمی مهلت ده این لدینا انکالا بیگمان نزد ما قید و بند گران و آتش دوزخ و طعاما ذا غصت و عذابا علیما و غذایی و, و عذابی درناک است یوم ترجف الارض والجبال و كانت الجبال کثیبا مهیلا روزی که زمین و کوها بلرز در و کوها متلاشی می شود و همچون توری شنر میگردد گردد ما ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم كما ارسلنا الی فرعون رسولا یقینا ما پیامبری به سوی شما فرستادیم که بر شما شاهد و گواه است همان گونه که به سوی فرعون پیامبری فرستادیم فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا آنگاه فرعون آن پیامبر را نافرمانی و مخالفت کرد پس ما او را به سختی مجازات کردیم فكيف تتقون ان كفرتم يوما یجعل الولدان شیبا پس اگر کافر شوید چگونه خود را از عذاب در امان میدارید روزی که کودکان را پیر میکند از زمانم فطر به كان وعده مفعولا در آن روز آسمان شکافته می شود وعده او شدنیست این ماه فمن شاء اتخذ این آیات پند و است پس هر کس که بخواهد راهی به سوی پروردگارش برگزیند إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَطَرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ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 وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو قيرا واعظم اجرا واستغفر الله ان الله غفور رحيم یقینا پروردگارت میداند که تو و گروهی از آنها که با تو هستند نزدیک دو سوم شب و یا نصف یا سس آن را به پا می خیزید. و الله شب و روز را اندازی گیری میکند میداند که شما نمی توانید حساب آن را دقیق محاسبه کنید لذا شما را بخشید پس اکنون آنچه برای شما میسر باشد از قرآن بخوانید الله میداند که برخی از شما بیمار خواهند شد و گروهی دیگر برای به دست آوردن فضل و نعمت الله در زمین سفر می کنند و گروهی نیز در راه الله جهاد می کنند پس آنچه چه میسر باشد از آن بخوانید و نماز را برپا دارید و زکات را بدهید و به الله قرض الحسن دهید و بدانید که آنچه از کارهای خیر پیشاپیش برای خودتان میفرستید نزد الله به بهترین وش و بزرگترین پاداش خواهید یافت و از الله آمرزش بخواهید که همانا الله آمرزندی مهربان است بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشندی مهربان یا ای یُهَمَدُ ای جام بر سر کشیده قم فأنذِر بخیز و بینده و ربک فکبّر و پروردگارت را بزرگ شمار و ثیابک فطّهِر و لباس‌هایت را پاکیزه دار و رجزاً فاحجب و از پلیدی دور کن ولا تمنن و نباید برای افزون خواهی چیزی را بدهی و فاصبر و برای خوشنودی پروردگارت شکیبا باش و پس هنگامی که در سور دمیده شود فَذَلِكَ يَوْمَ اِذِنْ يَوْمٌ عثير. آن روز روز سخت و دشواری است على الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ بر کافران آسان نیست ذرنی و من خلقت وحیده ای پیامبر، مرا با کسی که او را تنها آفریده ام باگذار و جعلت له مالا ممدودا و همان که مال فراوانی برایش قرار دادم و بنی شهودا و فرزندانی که همیشه در خدمت او و با او هستند و مهدت له تمهیدا و همه وسایل و امکانات زندگی را در اختیارش قرار دادم ثم یطمع ن زید باز هم طمع دارد که بر آن بیفزایم كلا انه كان لآیاتنا عنیدا هرگز چونی نخواهد شد بیگمان او نسبت به آیات ما دشمنی و عناد دارد صعودا. و به زودی او را به مشقت و سختی میاندازم. زیرا که او برای مبارزه با قرآن اندیشید و اندازه و محاسبه کرد. کیف قدر. پس مرگ بر او باد چگونه اندازه و محاسبه کرد. ثم قتل كيف باز هم مرگ بر اوباد چگونه اندازه و محاسبه کرد ثم نگاهی افکند آنگاه چهره در هم کشید و روی ترش کرد ثم به حق پش نمود و تکبر ورزید طال ان هذا الا سحر آنگاه گفت این قرآن چیزی جز جادویی که از دیگران آموخته شده نیست این هذا الا قول البشر و این چیزی جز گفتار بشر نیست دعوا سقر به زودی او را به سقر در آورد و ما ادرا ما سقر و تو چدانی سقر چیست؟ لا تبقی ولا تذر آتش سوزانی که نه چیزی را باقی میگذارد و نه چیزی را رها می کند لوواحت لی پوست را دگرگون کرد و میسوزاند. علیها بر آن آتش نوزده فرشته گمارده شده است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 وما ما یعلم جنود ربک ایلا هو و ما هی ایلا ذکرال البشر و ما دوزخ را جز فرشتگان قرار ندادیم و شمار آنها را جز برای آزمایش کافران معین نکردیم تا اهل کتاب یقین کنند و کسانی که ایمان آوردهاند بر ایمان خود بیفزایند و اهل کتاب و مؤمنان گرفتار شک و تردید نشوند و تا کسانی که در دلهایشان مرض است و نیز کافران بگویند الله از این مصلبتوسیق چه خواسته است بدین الله هر کس را بخواهد گمراه میسازد و هر کس را بخواهد هدایت میکند و شمار لشکریان پروردگارت را جز او کسی نمیداند. و این جزپند و اندرزی برای انسان ها نیست کلا والقمر آری هرگز این, این نیست که آنها تصور می کنند سوگند به ماه و لیل <الليل از ادبر> و به شب هنگامی که پشت کند و صبح <الى اتبر> و به صبح هنگامی که روشن شود این نهال <الصبح> ایشدالکبر که آن آتش دوزخ یکی از چیزهای بزرگ و هولناک است ندیره ترساننده و هشدار دهنده برای انسان هاست لمن شاء منكم یتقدم او یتأخر برای کسی از شما که بخواهد در راه راست پیش افتد یا از آن عقب بماند كل نفس هر کس بِمَا كَسَبَتْ در اعمال خیش است إلا أصحاب مگر اصحاب یمین که در باغهای بهشت هستند و می‌پرسند عن المجرمین از گناهکاران ما سلکكم فی چه چیز شما را به سقر درابرد قالو لنک من المصلین گویند ما از نماز گذاران نبودین و لنک نطعم المسکین و بینوایان را تعام نمیدادیم و, و پیوسته همراه یا بگویان و اهل باطل هم صدا میشدیم و کننا نکذب بیوم الدین و هموار روز جزا را تکذیب کردیم حتى تا زمانی که مرگ به سراغمان آمد فما تنفعهم شفاعت الشافعین پس شفاعت شفاعت کنندگان به آنها سودی نمی بخشد. فما لهم عن الْتَذْكِرَتِ مُعْرِضِينَ پس آنها را چه شده است که از پند و تذکر روی گردانند حمر مستنفره گویی که آنها گور خران رم کرده اند فرت من قسوره که از شیر گریختند بل يريد كل امر منهم ان صحفا بلکه هر کدام از آنها توقع دارد و میخواهد خواهد که به او نامی گشاده و جداگانه از سوی الله داده شود كلا بل لا هرگز چونی نیست که آنان می پندارند بلکه آنها از عذاب آخرت نمی ترسند. کلائن انه تذكره ناه حقا که این قرآن پند و یادآوری است و من پس هر کس که بخواهد آن را یاد کند پند گیرد و ما یذکرون الا الله و, اهل و یاد نمی کنند و پند نمی گیرند مگر اینکه الله بخواهد او اهل تقوا و اهل آمرزش است بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان لا اقسم بیوم القیامه به روز قیامت سوگند می خورم و لا نفس بالنفس اللوامه و به نفس ملامتگر سوگند می خورم آیا انسان می‌پندارد که پس از مرگ هرگز استخانهایش را جمع نخواهیم کرد بلا قادرین علی ان نسوی بنانه ما قادریم که حتی خطوط سر انگشتانش را یکسان و مرتب کنیم بل یرید الانسان اليفجر امامه بلکه انسان می خواهد که آزادانه و بدون ترس از آخرت در گناه و بدکاری مداومت داشته باشد یسأل أيان يوم القيامة عذین رومی پرسد روز قیامت کی خواهد بود فاذا فا برق البصر پسنگا میک چشم خیره شاواد باخسف القمر و ماه تیره و بینور گردد. و جمع الشمس والقمر و خورشید و ماه یک جا جمع کرده شود. يَقُولُ يوم آن روز يَوْمَئِذٍ انسان میگوید راه گریز کجاست؟ كَلَّا لا وزر. هرگز هیچ گریزگاهی وجود ندارد. إِلَى ربك آن روز قرارگاه نهایی به سوی پروردگار توست. یونبع الانسان یومئذین بما قدم و اخر. در آن روز انسان را از آنچه پیش یا پس فرستاده است خبرداده می شود بل الانسان علا نفسه بطیره بلکه انسان به خوبی برخیشتن آگاه است ولو القام عادیره اگر چه در دفاع از خود عذرهایش را در میان آورد لا تحربك به لسانك لتعجل به ای پیامبر هنگام نزول قرآن زبانت را برای تکرار و خواندن آن شتاب زده حرکت مده این علینا جمعه و قرآنه مسلما جمع آوری و خواندن آن بر عهده ماست فإذا فا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ پس هرگاه توسط جبریل آن را بر تو خاندین خاندن او را پیروی کن ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ سپس بیان کردنش بر اخته ماست کَلَّا بل حِبُّونَ الْعَاجِلَهُ هرگز چون نیست که شما مشرکان می پندارید بلکه شما دنیای زود گذار را دوست دارید و, و آخرت را رها می کنید اذن آن روز چهره هایی تازه و شاداب است ربها به سوی پروردگارش می و جوی یوم و در آن روز چهرههایی ابوس و در هم کشیده است تظن ان یفعل بها فاقرا یقین دارد که آسیبی کمر شکن به او میرسد کلا اله بلغت التراقی آری، چون جان به گلوگاهش برسد وقیل من راق و گفته شود چه کسی است که افسون بخواند انه الفراق و یقین کند که زمان جدایی از دنیاست و الساق بالساق. و ساق پایش به هم بپیچد الى ربك در آن روز راندن و مسیر همه به سوی پروردگارت خواهد بود. فلا ولا پس او نه تصدیق کرده است و نه نماز گذارده است. ولكن كذب بلکه قرآن را تکذیب کرد و از ایمان روی گرداند. ثم ذهب ال أهله سپس خرامان به سوی خانوادهاش بازگشت ول لك فولی وای بر تو پس وای بر تو ثم ول لك فاولا. باز هم وای بر تو پس وای بر تو ان آیا انسان گمان می کند که بی هدف و بدون حساب و جزا به خود رها می شود من منی آیا او نطفه ای از منی که در رحم ریخته می شود نبود ما آنگاه به صورت خون بسته در آمد. پس الله او را آفرید و درست و استوار ساخت فجعل منه الذكر والأنفا. پس از او دو زوج نر و ماده پدید آورد اليس ذلك بقادر على آیا چنین آفریدگاری قادر نیست که مردگان را دوباره زنده کند بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده هل اتا علی الانسان حين من الدهر لم یکن شیئن مذكورا یقینا زمانی طولانی بر انسان گذاشت که چیزی مهم و قابل ذکر نبود، اینا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بطیرا براستی ما انسان را از نطفی مختلطی آفریدیم او را میازماییم پس او را شنوای بینا قرار دادیم إنا هدیناه السبیل إما شاكرا وإما كفورا همانا ما راه را به او نشان دادیم خواه سپاس گذار باشد یا سپاس إنا اعتدنا للكافرین سلاسل وأغلالا وتعیرا به راستی ما برای کافران زنجیرها و قلها و آتش سوزن محیا کرده ایم بیگوما نیکوکاران در بهشت از جامی مینوشند که آمیزه اش کافور است عينشاب بها عباد الله يوفجرونها تفجرا پس چشمی که بندگان خاص الله از آن می هر وقت و هر جابه خوهند آن را جاری می سازند يوفونَ بِذري ويخافون يوم كان شّوه مستغرا بندگان نیکوکار به نظر وفا می کنند و از روزی میترسند ترسند که عذاب و شر آن فراگیر است. و غذا را با اینکه نیاز و دوست دارند به مسکین و یتیم و اسیر می بخشند. إنما نطعمكم لوجه الله لا نرید منكم جزاءا ولا شكورا و میگویند ما فقط به خاطر الله به شما غذا میدهیم نه از شما پاداشی میخواهیم و نه سپاسی إنا نخاف من ربنا يوما عبوسنقانطریرا همانا ما از پروردگار من می روزی که عبوس و سخت و دشوار است فوقاهم الله شر و ذال کالیوم پس الله آنان را از سختی و شر آن روز نگه داشت و آنها را شادمانی و سرور بخشید وجزاهم بما صبروا جنتا و حریرا و به پاداش صبری که کردند بهشت و لباسهای حریر بهشتی را به آنان پاداش داد متکین فیها علی الارائک لا یرون فیها شمسا ولا زمحریرا در آنجا بر تخت های زیبا تکه کرده اند، نآفتابی نا در آنجا میبینند و سرمایی. و ودانیاً علیهم ظلالها و ذللت قطوفها تذلیلا و سایه بر برانها فرو افتاده و میوه هایش برای چیدن در دسترس و بفرمان است. ویطاف عليهم بآنیت من فضة و اکواب کانت و در گرد آنها زرف های سیمین غذاها و کاسه های بلورین نوشیدنی ها گردانده می شد. قواریرا من فضة قدروها قد تقديرا. قاسه های بلورین از نقره که آنها را به اندازه مناسب پر و آماده کرده اند و یصون فیها جبیلا آنجا از جام سیراب میشوند که آمیز اش زنجبیل است عینا از چشمی در آنجا که سلسبیل نامیده میشود باقف وعلم مودان و مخال ندون عده آیته هم حتیبت هم لقلل ز و هموار نوجوانانی جودان برگردشان میچرخند که هرگاه آنها را ببینی گمان میکنی که مروارید پراکنده هستند. و اذا رأیت سم رأیت نعیما و ملکا و چون به هر سمتی بنگری آنجا نعمت بسیار و فرمان روائی عظیمی را میبینی عالیهم سیاب سندس خضر و استبرق وحلوا اساور من فضت و ربهم شرابا طهورا برانان لباس های سبز رنگ از دیبای نازک و دیبای زخیمه است و با دستبند های از نقره آراسته شده اند و پروردگارشان شراب پاک به آنها می نوشاند ان هذا كان لكم جزاءا وكان سعیكم مشكورا و به آنها گفته میشود این نعمتها پاداش شماست و سعی و کوشش شما قدردانی شده است إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزیلا ای انبر یقینا ما قران را بر تو تدریجا نازل کردیم حکم ولا تطع منهم آثماً او كفورا. پس برای حکم پروردگارت شکیبا باش و از هیچ گناهکار یا ناسپاسی از آنان فرمان نبر و ذکر اسم ربک بکرتا و, و صبح و صبح شام نام پروردگارت را یاد کن ومن من اللیل فسجد له و تبیحه لیلا طویلا و نیز بخشی از شب برایش سجده کن و نماز گذار و بخش درازی از شب او را تسبیح گوی این ها حبون العاجلت و بیگمان اینان دنیای زود گذر را دوست دارند و روز سختی را که در پیش دارند پشت سر خود رها میکنند کنند نحن خلقناهم و اسرهم و شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا ما آنها را آفریدیم و پیوند مفاصلشان را محکم کردیم و هر زمان بخواهیم جای آنان را به گروه دیگری مانندشان می دهیم هذه تذكره فمن شاء اتخذ ربه بیگمان این یادآوری و پنده است پس هر کس که بخواهد راهی به سوی پروردگارش برمی گذیند وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إن اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا و شما چیزی را نمی خواهید مگر این الله بخواهد بیگمان الله دانای حکیم است یدخل من یشاء فی رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما هر کس را که بخواهد در رحمت خود وارد می کند و برای ستمکاران عذاب درناکی آماده کرده است بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان والمسلات عف سوگند به فرشتگانی که پی در پی فرستاده شدند پس سوگند به فرشتگانی که همچون تند باد می روند و, و سوگند به فرشتگانی که عبرها را پراکنده می کنند پس سوگند به فرشتگانی که جدا کننده حق از باطلند ف المقي و سوگند به فرشتگانی که وحی الهی را به پیام بران القام می کنند عذران او نذرا برای اتمام خجد یا برای بین و هشدار انما توعددون لواقع. بیگمان آنچه به شما بعدعد داده می شودود واقع خواهد شد فإضا نج مغومست. پس هنگامی که تیره و محو شود و هنگامی که آسمان شکافته شود و, و هنگامی که کوه ها از جا کنده و پراکنده شود و هنگامی که پیام بران را جهت گواهی بر امتها وقت معین شود لی این امر برای چه روزی به تأخیر افتاده است لیوم الفصل برای روز جدایی و داوری و ما ادراک ما یوم الفصل و تو روز جدایی و داوری چیست و ایلون یوم اذن للمكذبين. در آن روز وای بر تکذیب کنندگان الَم آیا ما پیشینیان مجرم را نابود نکردیم ذُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ سپس دیگران را در پی آنها خواهیم آورد كذلك نفعل بالمجرمین این چونین با گنهکاران رفتار می ویل ویلون یومئذی للمکذبین در آن روز بای بر تکذیب کنندگان علم نخلقتم من آیا شما را از آبی پست و ناچیز نیا فریدین؟ فی قرار مکین پس آن را در قرارگاهی محفوظ و استوار قرار دادیم. الى قدر معلوم تا زمانی معین فقدرنا فنعم القادر. پس ما بر این کار توانا بودیم و چه نیک توانا و قدرتمند هستیم. در آن روز وای بر تکذیب کنندگان الم آیا زمین را جایگاه تجمع مردم قرار ندادیم هم در حال حیات و زندگیشان و هم مرگشان و جعلنا فيها رواسی شامخات و ماء ما انفراتا و در آن کوه بسیار بلند و استوار قرار دادیم و آبی شیرین به شما نوشاندیم وَإِلُنْ يَوْمَئِدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ در آن روز بای بر تقذیب كنندگان اِن طَلِقُوا اِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِی تُكَذِّبُونَ به آنها گفته می شود به سوی همان چیز بروید که پیوسته تقذیبش می ان طلق الى وله ذي ثلاث شعب بربيب به سوی سایه دودهای آتش سشاخه لا غليل ولا يغني من اللهب نسایه افکن خنک است و نه از گرمی شعله های آتش جلوگیری میکند ان همانا تری جهنم شرارهایی چون کوشک پرتاب میکند گاننه جماله گویی که آن شراره ها شتران زرد رنگ هستند ویل یوم در آن روز وای بر تکذیب کنندگان هذا يوم لا ينطقون. این همان روزی است که سخن نمیگویند ولا يؤذن لهم فيعتذرون و به آنها اجازه داده نمی شود تا عذرخواهی کنند ويل يومئذ در آن روز بای بر تکذیب کنندگان هذا الفصل جمعناكم این همان روز جدایی و داوری است که شما و گذشتگان را گرد آوردیم فاین فا کان لكم فکیدون پس اگر هیله و نیرنگی دارید آن را در حق من به گیرید واییی اوومائل در آن روز وای بر تغزیب کنندگان این المستقنا في ولاال و به راستی که در آن روز پر در سایه ها و کنار چشمه ها قرار دارند. و مما یشتهون و میوههایی هایی که میل داشته باشند کلو و شربو بما کنتم تعملون به آنها گفته می شود گوارا بخورید و بنوشید به پاداش آنچه می کردید اینا كذلك نجزی المحسنین ما این نیکوکاران را پاداش میدهیم دهیم و این در آن روز وای بر تکذیب کنندگان کلو و تمتعو قلیلم مجرمون ای کافران در این دنیا اندکی بخورید و بهره گیرید زیرا شما گناهکار هستید در آن روز وای برتگذیب کنندگان و اذا قیل لهم لا یرکعون و هنگامی که به آنها گفته شود نماز بگذارید و رکوع کنید نماز نمیگذارند و رکوع نمیکنند. کنند. ویل در آن روز وای بر تکذیب کنندگان و بی ای, ای اگر این مردم به این قرآن ایمان نمی پس بعد از آن به کدام سخن ایمان می آورند؟